تا چند کنم ارزه نادانی خیش، بگرفت دل من از پریشانی خیش، زنار مغانه بر میان خواهم بست، دانی چز از ننگ مسلمانی خیش. خیام اگر زباد مستی خوش باش، بالال رخی اگر نشستی خوش باش، چون آخر کار نیست خواهی بودن، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. در کارگه کوزهگری رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش ناگاه یکی کوزه برآورد خروش کو کوزه گر و کوزه خر فروش کوزه خروش سرمست به میخانه گذر کردم دوش پیری دیدم مست و سبوی بر دوش گفتم ز خدا شرم نداری ای پیر گفتا کرم از خداست رو باده نوش